من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله برد العالمین و اللهم اعلا سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و نعت اللائمت على اداره اجمعین اللهم افقنا جمعی المشتغلین ارحمنا برحمتی یا ارحم الاخمین اصرم که ك... بحثی که مطرح شده بود راجع به روایاتی بود که راجع به مساله اصطلاح آیات در روایاتی که در مساله وراثت وارد شده از کردیم ما قبل از اینکه وارد بحث خود روایت بشیم اون آیاتو که خوندیم اصلاح بعض از روایاتو به مناسبت همون به اصطلاح آیاتو میخونیم بعض این جلالانه خود روایاتو متحرز میشیم خود اصلی روایاتی که به عنوان به اصطلاح حلق الهیه هست به عنوان خود حلق الهیه وارد شد و پس شد بیهیم که روایاتی که ما الان در این جهت داریم در باب مناسب با آیات است و مناسب است با مساله مانع‌نشی مجموعه روایاتی است که در ذیل صحیحه ابراهیم ف اون چیزی که مربوط به است ابراهیم بوده مطرح شده. این روایات رو اول یک تجمالا شنون من روز قرآن میشه اینا مفرز میشیم بعد در مستقب خود اصل روایاتی که در باب حرقلهی هست اونا رو جدا کردیم ارصب این که قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم وارد بحث بحث مختصری که برای آشنا شدن و در قرار گرفتن اقوال اهل سنت و برخوردی که با مسئله دارن انشالله بشه تا بعد وارد تخاصی مسئله بشه راجع به اهل سنت از این که در میان کلمات اهل سنت خب این روایات شارب و روایات لحیه اینها فرامان ما در کتاب صحیحشون هم موجوده لیکن بر خودی که خود اهل سنت دانن یه نواح نیست دیوز در بحث دیوز الان ما متعرض اجمالی بحث میشیم حالا این تقاثیب و خصوصیات و فتوا و اینها زیر ها رو بردارز میکنن در بحث گذشته اگر دارون را باشه راجع به روایات شاره یا سوی به اسطلاح تردازی شد و معلوم شد که اجمالا علمای اهل سنت راجع به شاره و این روایاتی در شاره وارد شده و ربایت شارب هم به جزوز سنن ابراهیم سلام الله علیه ذکر شده هم این که خود پیه همبر فرموندن این کار بکنه بگذر سنن ابراهیم در ربایت شارب که اهل سنت بردن از این در نتیجه فتبا چهار فتبا داره. یک فتبا این است که مستحب و باید شارب تراشیده بشه یعنی به اسطلاع که قیمت بشه دوبارم این است که نه اصلا تغ زدنش حتی جایی نیست نیستشه تبیر مادر مسله حساب میشه کوتاه باز بشه، بحث تراشیددن در زدن، بحث کوتاه کردن یا به تعبیر فارسی ما میگی اصلاح بکن ری اینکه که مخید از ما ما، مخیر از ما کوتاه کردن و از بر تراشیدن رد شهارو همین است که نه اصلا کوتاه نکنه بلکه مقداری از بیخ بزنه که فقط لبا در بیاد احتمال شارب رو زنان یه لب گرفته فقط اون مقداری که بالای لب هست لب بالا اون باید از بیخ نه که کل بسه باید کاری بکنه که اون شاربش یعنی لب بالا لب بالای او کاملا واضح بشه اینم رد شهارو این اجمالت در باب وله اون وقت یه نکته هست هم در اینجا هم در جاهای دیگر ولی اینجا چونه یه مقداری چیزتره نه اثرش بیشتره در جاهای دیگر همینطوره ببینید گایی اوقات روایات با قطع نظر و اسانیدش تعاقیر مختلفی داره. به جهات مختلف نه به جرد باردی. مثلا شما در همین عبارت اکرم العلمان از نظر اصولی اینجور تحلیلش میکنون تحلیل اصولیتون یکی حکم هست که مفاد حیعت تو اکرم حیعت اکرم یکی متعلق اگر بهش موضوع میگن بیشتر متعلق میگن که خود اکرام ماده ماده اکرم اون بشن هم متعلق یکی هم علما که اصطلاحا روی بهش موضوع بگن و متعلق و متعلق این نقطه که از اصطلاح موضوع بین علماء این اختلاحی هستند رو گاهی موضوع میگن گایی علماء رو موضوع میگن لیکن اون راه تنیش اینطوره، طوره که وجوب باشه که مفادهیت ماده هم متعلق متعلق حکمه این اون وجوب تعلق گرفته به اکرام اون اصلاح علماء متعلق و متعلقه درگر که واقعین حکم هم بر وسایل مختلف ابراز میشه گاهی به هیئت ابراز میشه مثلا به رساله گاهی به ابراز میشه خبری روزنامه توکم حوادث علافونه گاهی مثلا به ماده امر امر و اراده میشه انار الله ان الله یعمركم کذاره این موارد مختلف اختلافات استظهار و خصوصیات اینها طبیعتا موارد فرق میکنه مثلا خود یک حکم گاهی به تعابیر است که مشابه مثلا مستحب به به تعابیر که واجب بیشتر اشعار داره من اثر هم دارم یک مطلبی که خیلی ای باید در نظر گرفت سابقا اخیرا ول و آقایان از رو اواخر قرن دوم اصول رو تغییر کردن که یک راهی شه بر شعر و در ثقه مثلا رو اون اعتماد بکن لكن عملا الان همینطور همچو حالا شما اصول می خونید و انصافش عملا در میان آیات و روایات جور نیست که تو اصول آمده مثلا تو اصول کنگی ماده افعال یا حیعت ماده هم کل راسته همه را به بکردار این ماده است. مثلا اقیم و احف این شواره این این هست راست که بایه ماده هست بایه حیعت و که این روایات همیشه اینجور نیست مثلا توی یک هست خب این حسرت رو وجود بگیریم و احتمال بگیریم منسان این مرسلیم بگیریم قال الله لابراهیم که هم فقط اشاره برون خب این حسرت چیه بکرمیم؟ که پس این در ذهن رو باشه شما در ذهنمون عملا اون چارچوهایی که تو برسوله هست همیشه اون چارچوها جلو می خیلی جا اون فرصوبه اما همیشه روناهی توی اصول ما یک شاکیبای معینی بودن هدفشون این بود که یک شاکیبای بشه در کل فقر کارساز باشه من صابره اصولم بودم چند بار اما انصافا اینطور نیست حالا را به این چهار قولی که در مثال شارب آورد من یک نکته رو میکنم من هدفم فقط این ما ننفی نیست کل عبواب فرق چون این رو داره شما. مثلا در باب احرام قبل المیقات ليس لا لا يتابع لا تعبیر با مناسب باهو روایت دیگه هم داریم لا احرام الا المواقيت التي یکیش یکیش این, این تعبیر ایکیش اون تحبیره گاره تعبیرش تحبیرش میخواد به تعبیر حکم وجهی بیشترش نه گاره باید به حکم تخلیفی اینا رو باید همه را محاسباتش انجام داد در اصول در که اصول ما خیلی در این کافی نیست برای کل موارد حالا در مثال همین شارب رو عرض بکنم ما در مثال شارب هم به لحاظ خود متعلم هم به لحاظ متعلم و متعلم هم به لحاظ خودون تحویلی در خوکم آمده هم به لحاظ یعنی ماده و اعطف. هم به لحاظ سرخ عبارت اختلاف وجود دارد. مثلا داریم احف و شواره از احفاقی داریم خوف و شواره داریم اص و شواره, شواره. تل مهترس بیشتر اون از با کتاه کردن و اصلاح کردن به قسم کنیم شواهر حالا متعلق آلا متعلق شواهد داریم سبال هم داریم سبال جمعه سبله ای که ما خاصم سبیلی دیم به اون تفسیر شده سبله هم داریم باز تعبیر این داریم که اِن ابراهیم فعل کرا اینم داریم تعبیر داریم به سیغه امره احف و چاره. تعبیر داریم امره می ردی بشیم به ماده امره نه به سیغه امر باز تعبیر داریم که سرخش شاهر میکنه الفترس و عشق یکیش هم شخصوش. این اصلا مادش مثلا سرک عبارتش عوض شد پس تعبیر داریم از از افراین تعبیر داریم ونسان مرسلین تعبیر داریم اصلا نزاق اصلا شاره این اصلا در این مسئله ما خیلی این تعاویر متعدده اون نقطی پنی یک مقدارش بحث اصولی است. کسانی که یکی از سوال مهم مدربوژی و تعبودی خبر واحد هم همینه مثلا سر بشینه این بحث و عدی تعبودی مثلا کسایی که قالب و عدی و تعبودی اصلا اگر روایت چون روایت هم همون یکی رو قبول میکنیم بگم بحث میکنه مثلا عمرانی ربی این سندرسته هم رو قبول میکنه. دیگه روی الفاظ دیگه کار نمیکنیم چون هم چون م بیاین ما بالای این مجموعه الفاظ و مجموعه تعابیر در نظر بگیریم چون امرغی داریم اهل فود دارید جزو دارید دست و شارب دارید سبال دارید یک معنا اجمالی کلی بالای اینها بوقفه بگیرید و انصافا خب روی معنای خودمون که روی خصوص اتنا هستید و مجموع شوالل جمع کرد. گوییم فریض نمیشه واقعا بینه بین الله به این نتیجه‌ای که کلم لفظ زین صادر تا رو اون لحظه میشه مانور بده که مثلا حفوز احفوز حقیقت این چیه حرف اصلا در لغت عرب چیه واقعش چی بوده سوال شوارد قص جز ال اخر این یک نکته است که در نظر دیگه و این در کل دفع کاربردی داره بعد اون نکته ظریف خیلی خاصه مثلا اگر تعبیر ارنانی ربی باشه خود دقت بکنید عمرانی ربی باشه ممکن است از این تعبیر اینطور بفهمید که این مسئله شاره یا بعد مثلا مسئله ریش و لهیه این در حقیقت اینطور نبوده که خود و خداونج جزه قرار داده از این حیم فهم عمرانی ربی اصناد عمر به ربه. که رب از هر اصمالایی لینی که ما اشاره از این که چون در روایات ما داره که در شب معراج در شب مبعض خداوند متعال تمام مساله همه مساله همه تاوزه در رسول نشان داد خود درد فیقا بر سلخون مساله جمع کرد ممکن است کسی از تعبیر همه را نیرم بید اینه همه را نیرم بید این الله یه همه رو اگر نصده الله بود ممکن بود حریضه بفهمیم همون نسبت ده امر ربی بود ممکنه سنت ببنده. در تخسین شما برای فریضه و سنت کردیم این خیلی کار سازه. از خود امر الربی و لذا ترغ این تصور هم خواهی خاری جز کبائر نمیشه چون بعضی از با هم گفتن ظاهرا سنمیان دارن. اصلا گفتن بیشتر از جز کبائر. ببینید ما ممکن است بگیم از این اصلا همین کلی عمل الربی جز هم پیغمبرانه و از مثلا آیه مبارکه فر... چون فعلا ما تو آیه هستی، حالا یه گایی روند الله شامل میشه. چرا که می‌گویم تا می‌خواد. تا حالا این بحثی که ما کردیم که الفاظ بر بررسی بکنید روی این جهاز بود کجاش امروز، کجاش نهی، کجاش ثبله، کجاش سبعله، کجاش شاره، کجاش حسه، کجاش این. یک نقصی از دیگری که غالبا الان در میان کلمات بقای ما مکرر آن حاصل اون نکته اون این که علاوه بر تقدیر ثبوتش از طرایز الهی یا این هوک جزء امر الله رسوله روز ربی نه امر الله امر ربه رب رب از ماده تربیته همش تو قران داره بی الی اعطى كل شیئا خلله یا خلقه ثم هدى این اشاره دینه که هر موجودی برای تکامل خودش این مظهر اسم است یعنی که اما پیغمبر اکر میخوان برای تکامل انسانها من این کار رو کردم امرگردی که مثلا سبیل ها کوتاه بشه و ریش ها بلند بشه خوب دقت رو کنید. من همین اخیرم متعرض شدیم از کردیم مجموعه روایاس رو که نگاه میکنیم به زمین دقیق و عنوان آیاته سنن پیغمبر در حقیقت یک نوع به اصطلاح یا تکمیل و تحسین و تجمیل پرایز الهیست یا یک نوع موارد جدیدیست که پیغمبر اکرم قرار دادن روی مساله خاصه خودش یعنی این جزه امرانی ربی اگر باشه نمیزم انایت شد این امرانی ربی در حقیقت مناسب است با مسئله سنت بودن و اگر قبول بکنید که سنت حصولا در حضاد تشریعشون فرقهای اساسی و جوهری با فریضه دارن با بعضی از نکات هم جور میاد چون مثلا بگیم اون استراری که برای سنت هست لازم نید وردازه اضطرار برای فریضه بشه یکیش استراره همین بحثی که الان مثلا, مثلاً که اگر کسی جایی بخواد شدگی داره منشعه مسخره میشه خب اگر انسان منشأ مسخره بشه این حکم الهی تعبیر نمیخواد ببین نه اگر مثلا فرض کن توی دنیای غرب میان برنامه اینجنیانه مال همین بمب‌گذاریه اون هواپیما به مرکز بغداد حقوق مثلا چه های دانشجو در دانشگاه مسلمان شیعه بیشین حساب بدن یه شالوزه هر کاری هست مثلا ما ترمز خب اونجا آبروی انسان و جان انسان در خطر است اون حساب میگه اون یک گرشید یه دردی نه مثلا مورد مخره میشه چیزی نشده منش این همه بعد داره بینید این ریش تراشی، چون جزء سننه اون درجه شدید نمیخواد دنبه کنه. خوشت اون درجه شدید. نه، اگر کسی مورد، مثلا حرز واقع بشه، سخدریگه واقع بشه، این یک نکات زریفی است که روی شناسی حدیث تاثیر داره که متن حدیث چی بشه؟ اما رنی و اگر ما این معنا آن بکنیم، اون نکته چی میشه که تراشیدن ریش یا کوتاه کردن یا تراشیدن شاره این جزه سنن پیغمبره اما سنن واجب نه سنن اختیاری که مستهم بگیم از این یک نکته بود من قبل از وارد که بارد،, از بارد بحث نشدیم من این نکته رو گفتم احسان خدمت آیون که کلن در فقر این خیلی تأثیر بذاره اخصاصی به ما هم نداره ما تعاویری که در فقر داریم یه تعاویر مختلفی که اون تعاویل میتونه برای خیلی از نتائجی که بعد میگیریم راه باشه این راجب تا اینجا اجمالا راجب مسئله سبی حالا راجب ریشم اجمالا اقوال اهل سنت رو بخونیم اجمالا تفسیر رو مو هم بگذارم برای دن. در در همین جلد شیشه کتاب کنزول امال صفحه شیست در پنجابه بر. این به بایت اعفو له ان شاء الله عرض میکنه هم از باب افعال جرأت شده یعنی حمزه قبل و اعفو له و هم آگو ثلاثی مجرد قرائت لهو حمزه بعد كده اون وقت ایشون نوشته ایشون که از باب افعال خوندن مثلا افطاء افطاء که میگه مخاطب اشاره کنه که باب ثلاثی مزید البسین ده باب رو خوندن آقایان در اصطلاحات عربی گویا این ثلاثی مزید رو میگن رباعی اصطلاح ماه ها اصطلاحا رباعی رو مثل درجه ببینید و درجه ما ها در کتاب‌های لغت جایی رو رباعی به نوشته میشه اصطلاح ما ها بهش میگن سولوزی مزیدون فی اونم غیر رباعی میگن رباعی در جو نه به اصطلاح ما و هواتر حالا دقت بکنید ایشون در کتب اهل سنت راست میگه نکته لطیفی ما هم داریم باعثاشو قاعده حصل من مجموع اهل ده میشین داره جواب تو بحث اشاره دار گفتی ایشون در میگه مجموع روایاتی که ما داریم تعابیر شیناسه اعفو هست اوفو هست اوفو اعفو کنان دازه شد افو یعنی گذشت وی کردن کردن اینشان ها من در بحث لغتی از خواهم کردن این لفظ در لغت عربی یک اصطلاح ارخی هم پیدا کرده چون این استعمالات دیگه هم داره که،, که اللهم اینی اصال کل افر و آفیته و معافات که فرق بین اف و آفی و معافات چیه؟ این میارسه که اون رحمت کرده افره ولی آفیت و موافات از ازمی کنم در محل خودش اما چونی این موقع باید پس اون اوفو کلمه یه اوفو از کلم سابرن چند باز در بحثایی اصل لغت وقا در لغت عربی مرادفه با کماله هر چیزی که داره شرایطی و اجزایی خوب به فرق بکنه اگر تمام اجزاء شاطش در بودر و بودش مثلا فرض کن آب گوشت خوب اینه که گوشت گوشتی نگنده‌ش خود اینه که نگنده‌ش این لکه مثلا چسته که گوشت باشه مثلا اینا نگنده‌ست این اگر اون تمام اون شرایط داش تمام اون اجزاء داش استعلام بشین وافیه بل از اوفو یعنی ریش‌ها رو رو کامل کن نه اینکه ول کنی ما دروبات ما هم داری چه روایت اهل سنت هم داریم اوفو برای واسه هم ذهنمون هست اهل سنت چه دریم اوفو له ها ولی ذا احتمال داره که اصلاً خوب دقت این چه روایت ایفا نه معنی که میشه بگه مثلا قضیه الانسان که کاملا دیگه دست آدم گرفته بشه ما از ایفا اینه نه مراد از ایفا همین فقه با تقدیر میگه و ارکو ارکو هم داریم در روایت چه صورت ما هم باشه این از ارخاء، ارخاء سر به اصطلاح به معنای تغرا و ویران کردن، ارخاء ارخاء هر ارخا، ارخا انانه در به ساختش را یه ول بکنه میگن ارخاء انانه افسارش ارخا ول کرد ارخاء یک مقداری شبیه است با احقاف، البته با بلند کردن بیشتر می‌سازه باز دیگه داریم ارجو یا ورجو ارجو او هم داری با همزه عرجه الله این رجعه در وقت عرب به معنای به اصطلاح چیزه به معنای تاخیر تخیر ازش که مرجعه هم میگنم مرجعه هم از همین گرفته شده حالا مرجعه الامر الله این ارجعه اینجا هم با واب آماده هم با همزه آماده این خودشون اختلاف عرض و وقتی رو،, رو هم داره که توفیق یعنی زیاد کردن بزرگ کردن این اصطلاحات یک مناشه ای داره اینجا رو می ارز در میگونده از ای که داره اینه که خود این فعلی که معمول رو بهه این چی جویه فقط از اشتراز کردنه مثلا این با مثال زیر ریش سان میتونه به تراشه؟ میگن مثلا اگر وقت رو باشه این زیر هم باید باشه تا توفیر بشه بزرگ بشه اما پر میشه به این وقت رو ها ها این نکات ایشون در این جا این من از این در کل سر جریان داره و یه نکته فنی لطیقی من یکی از مبانی بسیار مهم در حجب خبر تعبودی خبر هم همینه شما ما خودم لفته بگیریم یا جامعه بین اینها تصور بکنیم درد میکنیم بعد ایشون بعد بعد ایشون یک مقدار آجی به شرح لحیه گفته که بعد با توضیح بدیم قالت تبری ذهب قوم الى ظاهر الحدیث فکرهو تناول شیء من اللحیه من طول ها من عرضه ها من این شامل بعدم در اقوال عرض میکنم بعضی از این اعفله ها گفتن اصلا دست به ریش نزنین نه از عرضش عرض در اصطلاح اینه جانبه آره نه از طرف ارز کوتاه میکنی نه از طول اینجا هم مرادشون تنابول یعنی کوتاه کردن نه تراشیدن. و مراد همه از کرهه در اصطلاح اهل سنده و غیر احل سنده در ایمانه حرامه که حالا این همه میتونیم بحثه بارا من اشاره میکنم بعد و قال قومون اذا زاد على القبضه يخذ الزائد تا یک قبضه گرفته بشه زائد جا تو میشه اینم ان میاد که معنای گرفتن قبضی ادیشی بعد عرض میکنه و لاش این مسئله قبضه رو حالا اسمش نشد منم همین عرض اجمالی بکنم که داره برس اشاره داشته اشاره انتقالی روشن بشه مسئله قبضه رو تا من بیدن که من بدم که دوباره تحمل شد یا خود ما به پیغمبر نسبت داده نشه هم وقتی به فیلم نسبت داده شد نشده، همیشه به کلیت گوشت می‌گی، چیه استعفان ما نیی که نیچی یک نکته خارجی آمده. مادر به فیلم نسبت داده شده، در روایات ما از امام صادق الله در روا تحرير صلوات کنید، هم مساجد سناهیه، علاه ابن امر، انهاو فعل زواله. و شنیدم منشا قدرتیم، منشا امریه در, در این ای که نهارد اهل سنت سهلن کردن برمیگرده به ابن عمر از, از من چرا را نهارد کردن ابن عمر و عمر در فقه مدین محسرن در فقه کوفه محسر نیست نکته این ریشه هایی که مثلا چرا ابو همیفه مقایدش نکرده در اگر فعله ابن عمر باشید دوباره ها بگرده چون در کوفه تأثیرشون فرهنگ هم دو بود بیشتر به قول خودشون یکی عبدالله بن مسئول و یکه علیه بن عبی طالب به این, این که میگن و صدره مثلا محاسن حضر ببالن بود که این سینه یعنی میگه فعل ظاله و اله امر انهو فعل ظاله که بره یکی تیویشن سی درهایی بود امر گرفت و یک قبله و من طریق عبی در منطری ردی هره رهنه فعله هو بله سمه حکر تبری اختلاف هم دیمایی اخر کلمه احسی در اصطلاح آمده حلق نیست منشع تطور شده چون این کلمه احسی روی ما هم آمده قلمه دوات علیم جعفر انه رجل یعخوض من لحیته بعضی ها فهمه یعخوضن لحیته چون دواته کیلوتره میشه جلو نمیشه این فاطمه یعنی که فاطمه رسول ده بنی امامیه که و اسطوره چنین این روایت که اخذ شده من قائلم اینه اصلا روایاتی که ما داریم ندیدید که واضی که طرفش میتونه به تراشیه که معروفه به زبان گیر روایت از اون روایت واحد البته شواهد داره و اون روایت مربوط به اخذ است که کوتاه‌کرده کردنه جانب این که ما یوخذ من الله نه یوهلق من الله فی ما یوهلق هل لهو حد املا فعصم ده انجماع و بعد اون وعنه به حسن البسری حسن البسری تابعینه خب معلو پوغلاده از بدون شک و در بسری که از تحصیل گذار هست و من این نقطی رو از سالا نیدم کسی تنباه بزه کرد روش اگر اون وقت گردم بگردم تو مسادره احسن کلمات حسن پیدا بکنم برای ما هنوز ابهام داره میگیم نمیگیم کی از خودی که گرفته یه کلماتی ما داریم در روایات ما که اهل سنت ندارن افرادی ماهاس مثلا از اجرائیه که اونها در کتب اهل سنت اون از حسن درفی نعم کنه باغم که که امام صادق علیه السلام درفی باید این یک ای ای ای رابطه باید مثلا پیدا بشیم مثلا اذا بلقل ما قدر کره داریم نجسوشه سونیا نداره بلقل ما قدر کره اما از حسن برسی نهاره اضافه بلقل ما قدر کره از حسن برسی تو ما از ما مصادر هم به حسن ما که شنعینه عجل دردون میدونیم به ترتب طبقاتی هم حسن برسی مطلبای صد امام صادق سد چلو هشت ار سد پنجه سد چل هشت به هسب طبقه سنیها وقتی حساب میکنن مین مثلا امام صادق از او رفته مسجیول دقت میکن ن یک مسئله خیلي ذهن من مشغول کرده مثلا ماها در روایات ما داریم که محرم نهباد سر ش بسال بپوشون در حال راه رفتن سایه بلنزه. خب خوب اهلسنت اشکال نمیکنن زیدیها هم اشکال نمیکنن حتی بعض از کتب زیدیهم به ماها حمله میکنن چرا امامیه اینکار میکن ن این حرفار بزنه حتی امه احل بید از احل بید نخ... نرلاش این کار رو باید. مثلا به دروغایی کشیه در اون امام ساله باز و بعد یک تعبیری هم از امام موسی جعفر هست امهل من احرم تلح این ازها یعنی منتشف بکن باز بکن ازها در لغت عرب چارشه اینجا این عبارت رو لغویین و کتب چون سنیان این عبارت رو این از ما موسیقی جفر پیشی ما هست اره این خودشان بغیرین تصیحه که این عبارت درست نیست ادبیه، عدبیه این باب افعال میسه این باب افعال من تلقص میکنم همینجور تلقص میکنم اما غلط بود زبطش ای رحل من احرام این باب رحایی رحا, رحا به مانا برده چون ارها دخلت رحا ها اگه باب افعال باشه این صحیحه ایش ای رحل من احرام رحایت ها امروش این چه ار ها لمن احرام کنم یعنی او بروز لمن احرام کنم چطیشی دید خب این اصل این مطلب تو وقت ما هست اما این تعبیل از مصابی جهتر او من احرام از اجایی میشه کتاب حدستان از حسن برسی نرکنم <تصفح> او هلمن احرام کنم این چیز غریبی یه تعاویلی ما داریم هم حکم شما داریم که این دار مثلا غریب بین اهل سنت یا اصطلاحش و از اجایب اینه که از حسن بسیر من نمیدونم این مثلا در اهل اهلویس بوده حسن بسیر از اینها گرفتن بعد اهلویس منتشرش کردن این به درخوره یه چیز قریبیس از در میان دنیای علمه که متعارفه در در دنیای اسلام مثلا تصاویم کنی موسیرون جعبه از حسن بسیر گرفته این مسئله نه گفتم چون باه ما ممکن است در از این با یک مشکلات روبروشیم که از همون اول حلش بکنیم من فکر میکنم که او گرفته یعنی جای قاید اما مثلا در زبان ائمه از زبان موسبن جعفر مثلا عبارت مشهور شده قاعدش شده چون میگه که حسن بسی جای مزهبن نقل میکرده لکن چون تغیی شدیدده نقل شده نمیگفته قال علین فته قال ابوزینب تعبیر میجا ا هضت به ابو زینب برای. و اندره هستان از بحثی یوخ من طولها و عرضه ها مالا یفهش این رو یفهش یفحش... یا تفاهش که شده کنه این رو در مبایات ما نداره برای اجمالا داره ما بی این تعبیر نداره ایشون گفته قرضه مراد نیست اعتبار و با... خیلی بزرگ اعتباری نشه فرقه نمیکنه، کنه چه از طولش از عرضش احبالت یه عبارت اهل احل ها دارن بارد یه این یعنی گرغا مردم و هر یه توبری به گردنش کنه این ریشو مثلا مخالی که از مخالی مخالی جنب اخلاص یعنی اون توبری به گردن هر کسی الله گفت اینردی مردان جا کردن هر کی یه توبری به گردنش این بده به مثل طالبان ها اینقدر ریش خواباننده کردن یه من یکی از در برمساله های علاقیسه که هم نفی ناغه مثل مخالی منطوله ها و عرضه ها مالم یک به حد این که ای خیلی زننده بشه دیگه به قبضه و غیر قبضه حساب نکن و عطا هم گفته عطا فقیه مکه هست اما جزا تابعینه این شخصیت علمی معروض بین احل سنت عصدش هم از هنگه ایشون هنگیه حال و حمله حالا نه حالا ماکانت الاجم تفعل میرون قصدها و تخصیفها چون ایرانی ها کوتاه میکردن این ایرانی های ساسانی هستند اکس که ما داریم قبل از نفش تاریخی که داریم قبل از اونها ایرانیان ها ریش و کره آخرون از پر و زله ها اده هم گفته این کره هم بردوانه حرمت گیردشن اللا فی حج او عمره. و اصناده ها انجماعه بلی اون وقت از حدیثی که از پیغمبر نرحوش را کنه قبضه نیست وستدل در حدیث امر ابن شعیب عن عن جده اینو من همین اخیران با سوزیره این حدیث در کتاب حدیثی هایی زیاد، نسبت اینه زیاده زیاده شبه از از از از حدیث منعه تول مجموع هست سندش این طوره امرو ابن این اینه بحث علمی مفصل یا محل سنت داره که من اشاره کردم این احالی اسطلاحا از یک کتابی سنان صحیفه صادره ملکرم مهمته این صحیفهی ای که اهل سنت ادعا کردن از رسول الله رسی بگینه سندش همینه دارمان تکرار میشه امرو ابن شاید امرو ابن شاید امرو ابن شاید امرو این جدش عبدالله به سر همر نشاید، کسار محمد، کسار امر، کسار نشاید، پسر محمد، پسر عبدالله امرآس. این حدیث از کتاب عبدالله امرآس، صاحب عبدالله امرآس. این چون بسیم مفصلی اند. بعد اینو از قاضی ایاز نال، ایاز نال تری یک را هر کلیه و کسها و تحتیها و امرل آخذ من طولها و ارضها هزار، اول ماست پهصلم. بلکه ایشون گفته بل سکره و شهرت و فی تعظیم ها شهرت خیلی کتاه و خیلی بلند کردن هر دو جرس نیست بعد خود نبوی گفته المختار ترک ها علا حاله ها و اندای و تعرضه ها به تقصیر هم ولا غیره و کان مراده و بدالک غیر غیره که هر بحثی دیگه است بله اون وقت ایشون متعرض حدیث عمرو ابن شعيب شده که اگر این حدیث sahih بود خوب بود حالا که ماو حدیثون ضعیف راجب به حدیث عمرو بن شعيب گاهی صحبت کنم دیگه تکرار نمیکنم بله بعد. بعد ایشون میگه قول من قاله که به مقدار قبضه ببینید بسذر لبروالا از ابن عمر و عمر و ابي حدره صحابه ضعیف لأن أحاديث ال المرفوعه اف صحیحه مرفوعه رسول الله این ها صحیحه مثلا تنکی حاضر آسان فحاضر آسان لا تصلح استدار به ها معبودی حاضر آحادیث المرفوعه اف صحیحه لذا فاسلم و لعقوان نظر نظری هو قول من قال به ظاهره حاضر احادیث و کره انیو خدشی اون من طول نهیه ارزه حس بنابراین یواشواج اقوالی که بله در باب این هست البته یکی دو تا مطلب دیگه هم هست وا که به به حساب مطلب اینطوری بنزینت باشه حالا من اقوالش رو به اجمالا در باب ریش اجمالاً جمع و جور بکنم یک اولا ظواهر این اقوال که اصل هر حرامه و در حساب المظاهر اربعه یک بطری استفرات المزار و الأربع لحرة لیه، حرمت هر لیه. لکن یه جوری یکی که سمت المزار حرام که نه، وعده شافیه که نه او یک راه دارد. لکن نفهمید ولی این، این شاید در واقعیت به خیلی عرض نکنم. اونجا اون میشه. مگر اینکه یک راهی شد نه من حرمت باشه که احتمالش خالیه که شواهدش اونجا عرض نمیکنن. شاید متعارض میشنن. دوون دست متعارض. اینجا نیمه خوان. این راجع به هر، راجع به کوتاه کردن محل کلامشونه. اگه اقوال کامل نیورد، وقتی کوتاه کردن سه قول مخرخه، بلکه چهار قول من. یه یک قول مطلقا کوتاه کردن ممنوعه، واذری کرد، الفوا. کنان الان عرض کردن. دو کوتاه کردن مالا متفاهش به اصطلاح که تفاهم شده، ولی جایز نیست. قول سوم از جانب عرض میشه کوتاه کرده از طول نمیشه کوتاه کرد. این تو ما آمده قول دیگر مطلقا میشه کوتاه کرد طولا و عرضتا پس این بحثی که چهارتا این بحث کوتاه کردن نه تراشیدن تو این بحث مربوط میشه به کوتاه کردن روشنسون از البته یه کتابی از کردیم چیز آقای من من دیدم که از... از علمای مثلا قبل... نسل قبل از ماست شاگره من... از معاصی من اون ناینی ایشون از ناینی نرده من نشب مراجعه کنم از ناینی کرده که تا مقدار قبضه اصلا احتیاط وجود میکرده که از مقدار قبضه کوتاه نکنه یعنی تا مقدار قبضه رو احتیاط وجود که نگه بداره ای وجود وجوب احفاد تا مقدار قبضه از قبضه علیه احفاد کوتاه جوباً خطا <تص> از اصلا کوتاه قبض من انعام یادم نگذهای بزنها دیشینگه باشم ایشون هم هم کنید باید واقعا برای من تحجیب آور بود خیلی تحجیب تمام بعد بیشتر کلمات آنون ناینی پیدا از منوهای بزنی یا اساتی دیگه من داشتیم همچین مطلب چون... از منوهایی نشینگم و بعد, بعد دقیه بست انشاءالله تنزا الله های